اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم میم به نام خداوند بخشنده بخشالشگر تا سین میم تلک آیات الكتاب المبین این آیات کتاب روشنگه است لعلک نفسك نفس کألا یکونو مؤمنین گوئی میخواهی جان خود را از شدت اندوه از دست دهی به خاطر اینکه آنها ایمان نمی آورند إن لئن ننزل عليهم من السماء آية فظلت فظلت لها اگر ما اراده کنیم از آسمان بر آنان آيه‌ای نازل می كنيم که گردن هایشان در برابر آن خاضع گردد و ما ياتيهن من ذكر من الرحمن مفدس الا الا كانوا عنهم معرضين و هيك ذكر تازي از سوی خداوند رحمان برای آنها نمیآید مگر اینکه از آن رویگردان می شوند فقد كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنبَاءُ ما كَانُوا به یستهزئون آنان تکذیب کردند اما به زودی اخبار کیفر آنچه را استهزا کردند به آنان میرسد اولن يروا ال الارض كم أنبتنا فیها من كل زوج كريم آیا آنان به زمین نگاه نکردند که چقدر از انواع گیاهان پرارزش در آن رویاندیم؟ این نفی ذالک و ما کان اکثرهم مؤمنین در این نشانه روشنیست بر وجود خدا ولی بیشترشان هرگز مؤمن نبودند وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ و پروردگار تو عزیز الرَّحِيمِ است. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت موسا را ندا داد که به سراغ قوم ستمگر برو قوم فرعون يتقون. قوم فرعون آیا آنان از مخالفت فرمان پروردگار پرهیز نمی کنند؟ قال ربی اخاف این یکذیبون موسی عرض کرد پروردگارا از آن بین دارم که مرا تکذیب کنند و یاقی ق صادری ولایم وی و سینهام تنگ می و زبانم به قدر کافی نیست برادرم هارون را نیز رسالت ده تا مرا یاری کند وله همیه بوم فخاف و ع ان و آنان به اعتقاد خودشان برگردن من گناهی دارند میترسم مرا بکشند و این رسالت به پایان نرسد فذهب نه این فرمود چونین نیست آنان کاری نمیتوانند انجام دهند. شما هر دو. با آیات ما برای هدایتشان بروید ما با شما هستیم و سخنانتان را می شنبیم به سراغ فرعون بروید و بگویید ما فرستاده پروردگار جهانیان هستیم ان ارسل معنا بنی اسرائیل را با ما بفرست آنها به سراغ فرعون آمدند قال علم نربک فینا ولیدا ولبیثت فینا من عمر فرعون گفت آیا ما تو را در کودکی در میان خود پرورش ندادیم و سالهایی از زندگیت را در میان ما نبودی؟ و فعلت فعلت کلتی فعلت و انت من سرانجام آن کارت را که نمی بایست انجام دهی انجام دادی و یک نفر از ما را کشتی و تو از ناسپاسانی قال فعلتها اذا وانا من الضالين موسى گفت من آن کار را انجام دادم در حالی که از بی خبران بودم فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَدَنِي رَبِّي حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ پس هنگامی که از شما ترسیدم فرار کردم و پروردگارم به من حکمت و دانش بخشید و مرا اطّبیع بران قرار داد. و تلک نعمت تمنها علیاً عبّد بني اسرائيل. آیا این منتی است که تو بر من میگذاری که بني اسرائيل را برده خود ساختی؟ قال فرعون و ما رب العالمين. فرعون گفت: پروردگار عالمیان چیست؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين موسا گفت پروردگار آسمان ها و زمین و آنکه میان آن دو است اگر اهل یقین هستید قال لمن حوله الا تستمعون فرعون به اطرافیانش گفت آیا نمی‌شنوید این مرد چه میگوید ؟ قال ربكم رب موسی گفت او پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست قال ان عند رسولكم الذي ارسل لمجنون فرعون آن گفت پیامبری که به سوی شما فرستاده شده مسلما دیوانه است قال رب المشرق والمغرب وما بينهما این كنتم تعقلون موسی گفت او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دو است می باشد اگر شما عقل و اندیشه خود را بکار می گرفتید فرعون خشمگین شد و گفت اگر معبودی غیر از من برگزینی تو را از زندانیان قرار خواهم داد موسا گفت حتی اگر نشانه آشکاری برای تو بیاورم باز ایمان نمی آبری قال كنت من گفت اگر راست می گویی آن را بیاور، در این هنگام موسی عصای خود را افکند و ناگهان مار عظیم و آشکاری شد و نزع يده فاذا هي بيضاء و پداست خود را در گریبان فرو برد و بیرون آورد و در برابر بینندگان سفید و روشن بود قال للملائحه حوله ان هذا ساحر عليم فرعون به گروهی که اطراف او بودند گفت این ساحر آگاه و ماهری است یرید ان یخرجکم من ارضهم بسحره فماذا تأمرون او میخواهد با سحرش شما را از سرزمینتان بیرون کند شما چه نفر می‌دهید قالوا ارجوه واخاه وبعث في المدائن حاشرین. گفتند او و برادرش را ده و مأموران را برای بسیج به تمام شهرها اعزام کن سحار علیم. تا هر ساهر ماهر و دانایی را نزد تو آورند فجمع السحرات لیمیقات یوم معلوم سرانجام ساهران برای وعدگاه روز معینی جمع آوری شدند و قیلن این ناس هل انتم مجتمعون؟ و به مردم گفته شد آیا شما نیز در این صحنه اجتماع می کنید لعلنا نتبع السحرات إن كانوا هم الغالبین تا اگر صاهران پیروز شوند از آنان پیروی کنیم فلن ما جاء السحراتو قالو قالو لفرعون ا این لنا لأجرا این کنا نحن الغالبین هنگامی که صاحران آمدند به فرعون گفتند آیا اگر ما پیروز شویم پاداش مهم خواهیم داشت؟ قال نعم و اینکم اذن لمن المقربین گفت آری و در آن صورت شما از مقربان خواهید بود قال لهم موسی روز موعود فرا رسید و همگی جمع شدند موسی به ساهران گفت آنچه را میخواهید بیفكنید بیفكنید فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون انها تنابها و أساهای خود را أفچندند فرعون ما قفاً پيروزين فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون. سپس موسا عصایش را افکند. ناگهان تمام وسایل دروغین آنها را بلعید فالقی السحرت ساجدین فورا همه صاهران به سجده افتادند گفتند ما به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم رب موسی و هارون موسی و هارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ایلیكم و من خلاف من خلافی و لا فرعون گفته آیا پیش از اینکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ مسلما او بزرگ و استاد شماست که به شما آموخته اما به زودی خواهید دانست دستها و پاهای شما را به عکس یکدیگر قطع می کنم و همه شما را به دار می آبیزم. قالوا نا ضير اننا الى ربنا منقلبون گفتند مهم نیست هر کاری از دست دست است بکن ما به سوی پروردگارمان باز میگردیم. اینا نطمع این یغفر لنا ربنا خطایانا انکننا ان اول المؤمنین ما امیدواریم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد چرا که ما نخستین ایمان آورندگان بودیم و اوحینا الى موسى ان اسری بعبادی انکم متبعون به موسى وحی کردیم که شبانه بندگانم را از مصر کوچده زیرا شما مورد تعقیب هستید فارسل فرعون, فی المدائن فرعون از این ماجرا آگاه شد و مأموران بسیج نیرو را به شهر ها فرستاد اینها اولائ لشرمه قلیلون گفت اینها مسلما گروهی اندکند و انهم لنا و اینها ما را به خشم آورده اند و این لا جميع حابرون و ما همگی آماده پیکاریم فاخرجناهم من و فرعونیان مغلوب شدند و ما آنها را از باغ و چشمه بیرون راندیم و و مقام کریم و از گنجها و قصرهای مجلل آری، و اورثناها آری، این چنین کردیم و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم فأتبعوهم مشرقین آنان به تعقیب بنی اسرائیل پرداختند و به هنگام طلوع آفتاب به آنها رسیدند <تصفيق> هنگامی که دو گروه یک دیگر را دیدند، یاران موسی گفتند ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم موسی گفت چنین نیست، یقینا پروردگارم با من است، به زودی مرا هدایت خواهد کرد او حینا الی موسی یضرب بعصاک البحر فان فلق فکان کل فرق کالطود العظیم و بدون بال آن به موسی وحی کردیم عصایت را به دریا بزن عصایش را به دریا زد و دریا از هم شکافت شد و هر بخش همچون کوه عظیمی بود و ازلفنا ثم و در آنجا دیگران لشکر فرعون را نیز به دریا نزدیک ساختیم و انجینا موسی معه اجمعین و موسی و تمام کسانی را که با او بودند نجات دادیم سپس دیگران را غرق کردیم این و ما در این جریان نشانه روشنی است ولی بیشترشان ایمان نیاوردند چرا که طالب حق نبودند و این رب کله و العزيز الرحم. شکست ناپذیر و مهربان است. و تلو عليهم نبائِ ابراهيم. و بر آنان خبر ابراهیم را بخوان اذ قال لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. هنگامی که به پدر و قومش گفت، چه چیز را می پرستید؟ قَالُونَ نعبد اَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ گفتند، بطهایی را میپرستیم و همه روز ملازم عبادت آنهاییم قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ گفت، آیا هنگامی که آنها را میخانید صدای شما را میشنوند؟ او ینفعونکم او یضرون یا سود و زیانی به شما می رسالند گفتند ما فقط نیاکان خود را یافتیم که چونین می کنند گفته آیا دیدید این چیزهایی ای را که پیوست پرستش میکردید؟ انتم وآباؤكم الأقدمون شما و پدران پیشین شما و إن لهم عدو إلا رب العالمین همه آنها دشمن من هستند و من دشمن آنها مگر پروردگار عالمیان الذي خلقني فهو يهدين. همان کسی که مرا آفرید و پیوست راهنمایی می کندند و الذي هوطیمی و اسقین که مرا غذا میدهد و سیراب بینماید و مریقف هوایش فین و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا میده و الذي او میدونی و که مرا می, می راند و سپس زنده می کند والذی الدین. و کسی که امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد ربی هبنی حکما و پروردگارا به من علم دانش ببخشد و مرا به صالحان ملحق کن و جعلی لسان صدق فی الاخرین و برای من در میان امتهای آینده زبان صدق قرار ده و جعلی من جنت نعیم و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردند وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ بافی درام را به یامرز که او از گمراهان بود وَلَا تَحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ و در آن روز که مردم برانگیخته میشوند مرا شرمنده و رسوا مکن یا بنون در آن روز که مال و فرزندان سودی نمی بخشد إلا من الله بقلب سلیم مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید. و الجنة در آن روز بهشت برای پرهیزگاران نزدیک می شود و دوزخ برای گمراهان آشکار می کردد و به آنان گفته می شود کجا هستند معبودانی که آنها را پرستش می کردید مِن دونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَ مَعْبُودهای غیر از خدا آیا آنها شما را یاری می کنند یا کسی به یاری آنها می آید فَكُبْ فِيهَا هُمْ وَالْغَارُونَ در آن هنگام همه آن معبودان با آبدان گمراه به دوزخ افکنده می شوند. و جنود ابلیس جمعون. و همچنین همگی لشکریان ابلیس قالوا و هم فیها یختصمون آنها در آنجا در حالی که به مخاسم برخواست میگویند دالله این کننا لفی ضلال مبین به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکاری بودیم. بی رب چون شما را با پروردگار عالمیان برابر میشمردیم. اما کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد. فما لنا من شافعین. افسوس که امروز شفاعت کنندگانی برای ما وجود ندارد. ولا و نه دوست گرم و پرمحبتی. فلو ان لنا کرتا فنكون من المؤمنين. ای کاش بار دیگر به دنیا بازگردیم و از مؤمنان باشیم. این في ذلك لاایه. وما كان أكثر مؤمنین در این ماجررا نشانه و است ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند وایربكله عزیزحيم و, و پروردار تو عزیز رحیم است که قوم رسولان را تکذیب کردند اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون هنگامی که برادرشان نوح به آنان گفت آیا تقوا پیش نمی‌کنید؟ اینی لكم رسول امین مسلما من برای شما پیامبری امین هستم فتقوا الله و اطیعون الهی پیش کنید و مرا اطاعت نمایید وما اسألكم علیه من اجر. علی برای این دعوت هیچ مزدی از شما نمیطلبم اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است الله و اطیعون. پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید گفتند آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که افراد پست و بی ارزش از تو پیروی کرده اند نوه گفت من چه می آنها چه کاری داشته اند ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون حساب آنها تنها با پروردگار من است اگر شما میفهمیدید وما انا بطارد المؤمنین و من هرگز مؤمنان را ترد نخواهم کرد این انا الا نذیر مبین من تنها انظار کنند ای آشکارم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين گفتند ای نوح اگر از حرفهایت دست بر نداری سنگ خواهی شد قال ربی ان قومي كذبون گفت پروردگارا قوم من مرا تکذیب کردند ففتح بینی و بینهم فتحا و نجنی و من معی من اشنون میان من و آنها جدائی بیفتند و مرا و مؤمنانی را که با من هستند رهایی بخش فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون ما او و کسانی را که با او بودند در آن کشتی که پر از انسان و انواع حیوانات بود، رهایی بخشیدیم. ثم أَغْرَقْنَا بعد الْبَاقِينَ سپس بقیه را غرق کردیم. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا اکثر هم مُؤْمِنِينَ در این ماجرا نشانه روشنی است اما بیشتر آنان مؤمن نبودند. وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. و پروردگار تو عزیز و رحیم است. كذبت عاد المرسلين. قوم عاد نیز رسولان خدا را تقصیر كردند إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتتقون. هنگامی که برادرشان هود گفت. آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ اینی لکم رسول امین مسلما من برای شما پیامبری امین هستم فدقوا الله و اطیعون پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. و ما اسألکم علیه من اجر من در برابر این دعوت هیچ اجر و پاداشی از شما نمی‌طلبم. اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالمیان است آیا شما بر هر مکان مرتفعی نشانه ای از روی هوا و حوض میسازید؟ و, مصانع لعلكم و قصرها و قلعه های زیبا و محکم بنا می کنید. شاید در دنیا جابدانه بمانید و اذا بطشتم بطشتم جبارين و هنگامی که کسی را مجازات می کنید همچون جباران کیفر می دهید الله و اطیعون پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. وَاتَّقُوا و از نافرمانی خدایی بپرهیزید که شما را به نعمتهایی که میدانید امداد کرده. أَمْدَدَكُمْ شما را به چهار پایان و نیز پسران لایق و برومند امداد فرموده و جنتی و عیون همچنین به باغها و چشمها اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم اگر کفران کنید من بر شما از عذاب روزی بزرگ می قالوا سواء علينا او عذت لم تكن من الواعظين آنها گفتند برای ما تفاوت نمی کند که ما را انذار کنی یا نکنی این هذا إلا خلق الأولین این همان روش پیشینیان است وما نحن بمعذبین و ما هرگز مجازات نخواهیم شد فكذبوه فاهلکناهم ان فی ذلک لایه و ما کان اکثرهم مؤمنین آنان هود را تکذیب کردند ما هم نابودشان کردیم و در این آیت و نشانه است برای آگاهان علی بیشتر آنان مؤمن نبودند و ان ربک لهوالعزیز الرحیم با و پروردگار تو عزیز و رحیم است كذبت سمود قوم ثمود رسولان خدا را تکذیب کردند ایز قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انگامی که برادرشان صالح به آنان گفت آیا تقوا پیشه نمی‌کنید این من برای شما پیام بری امین هستم الله پس الله واطيعون تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید وماسألكم عليه من اجرین إن اجر إلا على رب العالمین من در برابر این دعوت اجر و پاداشی از شما نمیطوم اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است تو تون في م هنا امین آیا شما تصور میکن؟ همیشه در نهایت امنیت در نعمت‌هایی هایی که اینجاست میمانید در این باغ ها بود چشمه ها و حظیم در این زراعت‌ها و نخل هایی که میوههایش شیرین و رسیده است و من الجبال بیوتا فارهین و از کوها خانه هایی می تراشید و آن به ایش و نوش می پردازید فدقوا الله و اطیعون پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید ولا تطیعوا أمر المسرفین و فرمان مصرفان را اطاعت نکنید الذي فسیدون همانها که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنندند گفتند ای صالح تو از افسون شدگانی، و عقل خود را از دست دادی ما انت الا بشر مثلنا فات بایه فات بایه ان کنت من الصادقین تو فقط بشری همچون مایی اگر راست میگویی ای گویی و نشانه ای بیاور قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم گفت این ناقه است که آیت الهی است برای او سهمی از آب قریه و برای شما سهم روز معینی است وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ عظیم کمترین <صمتم> <سرنجام> آزاری به آن نرسانید که عذاب روزی بزرگ شما را فرا خواهد گرفت فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُونَ دِمِينَ سرانجام بر آن ناق حمله نموده آن را پی کردند سپس از کرده خود پشیمان شدند واخدم وملعد این نف کل آ و مگر نه اکثر هم و عذاب الهی آنان را فرا گرفت در این آیت و نشانه است ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند. و این ربک لهو العزيز الرحيم. با عزیز و رحیم است. کذبت قوم لوطن المرسلين. قوم لوط فرستادگان خدا را تکذيب کردند. اذ قال لهم اخوهم لوطن آلات تتقون. هنگامی که برادرشان لوط به آنان گفت. آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ اینی لکم رسول امین من برای شما پیامبری بری امین هستم فتقوا الله و اطیعون. پس تقوی الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید و ما اسألكم علیه من اجر این اجریه الا علی رب العالمین من در برابر این دعوت اجری از شما نمی طلبم اجرم من فقط بر پرورده عالمیان است آیا در میان جهانیان شما به سراغ جنس ذکور میروید و تذرون ما خلق من ازواجكم. بل انتم قوم عاد و همسرانی را که پروردگارتان برای شما آفریده است رها میکنید حقا شما قوم تجاوزگری هستید قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من گفتند ای لوت اگر از این سخنان دست بر نداری به یقین از اخراج شدگان خواهی بود قال من گفت من دشمن سرسخت اعمال شما هستم مما پربرگارا من و خاندانم را از آنچه اینها انجام می دهند رهایی بخش هو اهله ما او و تمامی خاندانش را نجات دادیم. الا عجوزا فی الغابرین جز پیرزنی که در میان بازماندگان بود ثم دمرنا الاخرین سپس دیگران را حلاک کردیم و آن باران بر آنها بارید از سنگ بر آنها فرستادیم چه باران بدی بود باران انذار شدگان این فی ذالک رایه و ما کان اکثرهم مؤمنین در این ماجرای قوم لوط و سرنوشت شوم آنها آیتی است اما بیشترشان مؤمن نبودند و, و پروردگار تو عزیز و رحیم است اصحاب المرسلين اصحاب رسولان خدا را تکذیب کردند. اذ قال لهم شعیب الا تتقون هنگامی که شعیب به آنها گفت آیا تقوا پیشه نمی‌کنید؟ ان ليکم رسول امین مسلما من برای شما پیامبری امین هستم. فتقوا الله پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. وما اسألكم عله من أجر إن أجری إلا علی رب العالمین من در برابر این دعوت پاداشی از شما نمیطلبم اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است وفو الكیل ولا تكونوا من المخسرین حق یمانه را ادا کنید. و کم فروشی نکنید، و دیگران را به خسارت نیف کنید، و المستقیم، و با ترازوی صحیح وزن کنید، و حق مردم را کم نگذارید، و در زمین تلاش برای فساد نکنید، واتقوا الذی خلقكم والجبلة الأولین و از نافرمانی كسی كه شما و اقبام پیشین را آفرید بپرهیزید قالوا انما نت من المسحرین آنها گفتند تو فقط از افسون شدگانی. و ما آنت الا بشر مثلنا و اینا ظن کلا تو بشری همچون ما ای تنها گمانی که درباری تو داریم این است که از دروغجویانی. فاسقط علينا كسفا من السماء كنت من الصادقين. اگر راست میگویی سنگهایی از آسمان بر سر ما ببارند قال ربی اعلم بی تعملون شعیب گفت پروردگار من به اعمالی که شما انجام میدهید داناتر است فکذبوه فأخذهم عذاب یوم الظله اینهو کان عذاب یوم عظیم سرانجام او را تکثیب کردند و عذاب روز سایبان سایبانی از ابر سائق خیز آنها را فرا گرفت یقینا آن عذاب روز بزرگی بود این فی ذلک و ما کان هم مؤمنین در این ماجرا آیت و نشانه است ولی بیشتر آنها مؤمن نبودند وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ و پروردگار تو عزیز الرَّحِيمِ است وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينِ مسلما این قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. نزن بی روح الامین روح الامین آن را نازل کرده است. بر قلب پاک تو تا از انذار کنندگان باشی. مبین آن را به زبان عربی آشکار نازل کرد. و انه لفی و توصیف آن در کتاب‌های پیشینیان نیز آمده است اولم لهم بنی آیا همین نشانه برای آنها کافی نیست که علمای بنی اسرائیل به خوبی از آن آگاهند على بعض الارجمین. هرگاه ما آن را بر بعضی از ها نازل می کردیم. فقراءه ما و او آن را بر ایشان می خاند به آن ایمان نمی آوردند. کذالک في قلوب المجرمين. آری، اینگونه با بیانی رسا قرآن را در دل مجرمان وارد می کنیم. لا به اما به آن ایمان نمی آورند تا عذاب دردناک را با چشم خود ببینند فياديهم بغتت و لا يشعرون. ناگهان به سراغشان می آید در حالی که توجه ندارند يقولون هل نحن منظرون و در آن هنگام میگویند آیا به ما مهلتی داده خواهد شد آیا برای عذاب ما عجله می میکنند به ما خبر ده اگر باز همسالیانی آنها را از این زندگی من سازیم ثم جاءهم سپس عذابی که به آنها وعده داده شده به سراغشان بیاید. ما عنهم ما کانو یمتعون این تمتع و بهرهگیری از دنیا برای آنها سودی نخواهد داشت وما ما أهلكنا من قریت الا لها منذرون. ما هیچ شهر و دیاری را حلاک نکردیم مگر اینکه که کنندگانی از پیامبران الهی داشتند ذکرا و ما کننا ظالمین تا متذکر شوند و ما هرگز کار نبودیم و تنزلت به الشیاطین شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و ما ينبغی لهم و ما يستطيعون و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند این عن السمع لمعزولون آنها از استراغ سمع و شنیدن اخبار آسمانها ها برکنارند فلا تدعو معالله الهن آخر فتکون من المعذبين. ای پیامبر هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود و انذر عشیرتک الاقربین و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَالُوْ پَرِ خود را برای مُؤْمِنَانِ که از تو پیدهی می کنند بگستر فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِیْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و توکل علی العزیز الرحیم. و بر خداوند عزیز الرحیم توکل کن.اللّذي يراك حين تقوم. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میخیزی می بیند.و تقلبك و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اُعُدَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اوست خدای شناوی و دانا. هَلْ أُنَبِیُّكُمْ عَلَى مَا تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ؟ آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می شند؟ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفْكٍ آنها بر هر دروغگوی گناهکار نازل می کردند. یلقون السمع و اکثر هم به دیگران القا می کنند و بیشترشان دروغگو هستند و یتبعهم الگاون پیام بر اسلام شاعر نیست شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان پیروی می کنند. الم تر أنهم فی كل وادی آیا نمیبینی آنها در هر وادی سرگردانند ونهم یقولون ما لا یفعلون و سخنانی میگویند که به آنها عمل نمیکنند الذين ظلموا مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام میدهند و خدا را بسیار یاد میکنند. و به هنگامی که مورد ستم واقع میشوند به دفاع از خویشتن و مؤمنان برمیخیزند و از شعر در این راه کمک میگیرند آنها که ستم کردند به زودی میدانند که بازگشتشان به کجاست